بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوندی بی اندازه مهربان نهایت بارش بیگمان نوح را به سوی قومش فرستادیم و با وی گفتیم که قوم خود را بیم بدی پیش از اینکه که عذاب دردناکی به سراغشان بیاید گفت ای قوم من بیگمان من برای شما بیم دهنده آشکارم شما را به این هشدار می دهیم که خدا را پرستش کنید و از او بترسید و مرا را اطاعت کنید تا برای شما از گناهان شما بیامرزد و تا وقتی معین شما را مهلت دهد به یقین چون مدت مقرره الهی فرار رسد به تأخیر نمی اگر شما می دانید گفت پروردگارا من قوم خود را شب و روز دعوت کردم اما ایشان را دعوت من جز فرار از هر چیز نیفتید و من واقعا هر باری که ایشان را دعوت کردم تا آنها را بیامرزی انگشتان خود را در گوشهای خود قرار دادند جامعههای خود را به سر کشیدند و بر کفر خیش اصرار ورزیدند و با سرسختی به تکبر خیش دوام دادند و باز هم من ایشان را علنا دعوت کردم سپس و ایشان هم آشکارا و هم پنهانی و محرمانه اعلان داشتم به ایشان گفتم که از پروردگار خود آمرزش بخواهید. بیگمان وی بسیار آمرزنده است به شما از آسمان باران پی در پی می فرستند. و شما را به اموال و فرزندان مدد می کند و برای شما باغستانهای عطا می کند و برای شما جویبارهایی پدید می آرد شما را چی شده است که نمی خواهید برای خدا عظمت قائل شوید در حالی که شما را به مراحل گوناگونی آفریده آیا نمی بینید که چطور خداوند هفت آسمان را طبقه طبقه آفرید و ماه را در آنها نوری گردانی و آفتاب را چراغی گردانید و خداوند شما را به حیث روی دمی زمین رویانی سپس شما را در آن باز می باری دیگر شما را به گونه بیرون می کند و خداوند زمین را برای شما فرش گردانی تا راههای های ای را از آن بپیمایید نوح گفت پروردگارا ایشان مرا نافرمانی کردند و کسی را پیروی کردند که مال و اولاد او جزیان چیزی برایش نیفزود دسیسه بزرگ را ترحق کردند و با یکدیگر دیگر گفتند خدایان خود را هرگز ترک نگویید. نه ودرا و نه سعارا و نه یغوس و یعوق و نصر را هیچ کدام آنها را نگذارید و مردم بسیاری را گمراه کردند و بسطمگاران جز گمراهی می افضایید از سبب گناهانشان در طوفان غرق گردانیده شدند سپس در آتش در آورده شدند پس جز خدا برای خود مددگاری نیافتند نوح گفت پروردگار من، از کافران هیچ کس را هم به روی زمین مگذاری واقعا اگر کسی از آنها را بگذاری بندگان تو را گمراه می کنند و جز نسل بدکار و ناسپاس بار نمی آورد ای پروردگار من پدر و مادر من را بیاموز و نیز کسی را که به حیث مسلمان به خانه من داخل می شود و همه مردان مؤمن و زنان مؤمن دار و بسیطا جزء جز حلاکت میزا